الله من بسم الله الرحمن لله رب الله على الله قال على اللهم لا این مدار متعرضه به مناسورتی کلمات مرحومه بعد صاحب وسایل بشیم بر به مناسورت اخباری ها دلیل 15 همی که ایشون اقام فرمودن خلاصش اینه که شما که مراجعه مخواهیم بکنید به علم رجال و معرفت این که این صحیح هست یا صحیح نیست صحیح هست یا نه به مثل شیخ توسی برمیگنید یعنی به شیخ توسی که این توسیقات گفته خودش همین رواده زعید رو آورده خود شیخ توصی اینها رو آورده پس که شما بایدین اول اشتار به خود شیخ توصی بارد شما اگر بناس اعتماد بکنیم بر نهر شیخ توصی در مبارسه جادی پس اعتماد بکنیم بر شیخ توصی در همین مسالات این مطلبی رو که ایشون اینجا اجمالا در دلیل 15 بفتر این یه مطلبی که تقریبا در حقوق مجرد معلوم نازمی و دیگران زیاد میگفتن این معروفه در زمان ما که بزرگانی که الان ما مثلا داریم که حدیث زعیفه خود همون ها این حدیث زعیف رو بردن خود همون اشخاص اگر خودش یه توسی جایی گفته فلان زعیفه مثلا محمد نیتاق ناویل رو برسه بغدادی و نونسی یا زعیف طلا ماشاءالله روایتش 80 تعبیب و استفسار موجوده پس این چطور میشه ما این مطلب رو قبول کنیم این عرض کردم اگه ایشان من مختصرش عرض کنم اول میخوام مطالعه کنم تعاوی ایشان دیگه‌ای نیست من خلاصه این اشعار رو از کردم و سابقه را از کردم این مطلب ایشون درسته یعنی انصافا این برگشتش به همون نکته است که با اون معیارها و ارزیابی‌هایی که علامه کرده میچین کارو خدامارو این باقی راسته اجمالش راسته تفصیلش نه این که چه مقدار تضعیف شده تضعیف ها رو چی جهت بوده و عمل شکل رو جهت بوده اونا احتیاج به شرح دیگری داره که دیگر جاش اینجا نیست نقطه 16 هم و دلیل 16 هم رو انها در اسطلاح مستهدستان فیزمان و علامه اوشقی احمد ابن ساروز معروف ما شکل اینه اصطاد برای سید انتاروز که سیده معروف استاد ایشان ابن تاووز که دو شاگرد ایشان مرمونه ابن داوود در رجال خودش و علامه در خلاصه این مطلب رو به اصطلاف هم و هوا اشتهادون و زنون من اما این ابن اشتهاده و کافی نیست و بعد تمسکم میکنه به این که من قولهم علیه مسلام شرع الامور محدثات ها و قولهم علیه مسلام علیکم به تلاح من که دارم از کردم در اصطلاحات خیلی در استعمال احفاظ که دقت بشین قوله هم قوله هم. ظاهر شیده که اگر ما باشیم اونه عبارد یعنی مثلا چند تا حوایتی ربایت از چند امام نهن یا ربایت اما شرر امور محدثاتها این در میان اهل سنت هست در میان ما محصر و ضعیفه قابل تلا... نیست. علیکم به تلال که علیکم هست به تلال هم نیست تلال یعنی کهون در مقابل جدید این هست روایت اما ضعیف است و, و مربوط به معاشره که با قدیمی با نفری قدیمی، بیشتر بود نه رفاقت جدید. این ای که به تلاش مراد این رأی به بحث مثلا آرا و شهادات و چیخایی که جدیده ندارد. ایشون چطور آوردن روایت ها و تغییر قدره هم با این روایت واحده هم این داره و اле کم هست. در واقع آداب معاشرت اصلا در حاشه اگه در باب احکان و صحبت خیار ناس مرحوم کلین صلی علیه اونجا آورده این دوتا ربایت مبارکه که او این آوردن این مخاطم تمسط به رواست هر دو رواست هم زعیق سندن هم یکیش کس هم نظر بحث آر. بله این اصل این مطلب که این یک اصطلاح جدیدیست ارز کردم تکرار مطالبه ایشان و با این اصطلاح جدید نمیشه میازهای قبل از او و ارز یا بیتره درست این ما قبولش ده مطلب 17 هم به تحبیل ایشان خلاصش اینه که این تقسیمی که علامه کرده چون دیدین علامه افزانا این تقسیم مشهور رو کرده که چهار قسمش کرده بعد ها در کتاب هایی که در درایه اصحاب ما نوشتن که متاسفانه اون درایه ها یعنی درایه ها، های رسمی هم در حدیثمون بیشتر میخوره به همون یکی از اهل سنت گرفته شده در کتاب معروفی که الان ما درایه داریم ما معروف شهدستانی در اونجا همون مصطلحات اهل سنت یک تخصیم اساسی کردن چهارتان تا و حسن و محسازه ای یک تخصیم کردن 28 و نوعه این تخصیم فریعی در کلامات علامه نیست ت یک تقسیمه مثلا حدیث مسترد مسترد بستن از مسترد حدیث در محلول درستان اللفی درستان یه تقسیمات دیگری هم برای حدیث اضافه کردن در کتاب کلمات جهدستانی که طبعا هیچ خودم از این اصطلاحات در ما نبوده از یک این کتابی محلوم پدر شهر باهایی داره اون اصباتا در حدیث شناسی با روایات ما بهتر میکره و مقدمه منتظر هست ما من مرحوم سال معالم شهر حسن پسر شیده سانی دوازدر فائز دوازد مقدمه اون هم با معرفت حدیث ما بهتر میخوره واسه این ارز کردن به صوری نه این تقسیم اعلام به حدیث ما میکوره نه تقسیماتی که بعد به اسم معرفت الحدیث ما داریم این کتبیش به اسم فرهام سیدسانی اول اول کسی که این توجیه را نمیشه سیدسانی قبلشون نده و بعد دید مثلا همون روشانشعاع دادن، تفصیل دادن، توضیح دادن این مقاله دیدید گفته تماما از مصادر اهل سنت گرفته شده کرده ایشان بعضیش رو رو روایت‌ها ما تطبیق بکنند. سعی تفسیرشون کنم انصافا ما تفسیرش کنم و انصافا این اصطلاح کارگشا در ما نیست این درسته اشکال مرحومیشون اینه که این تحتیم بندی ها برای خبر واحد او بحثشون تو خبر واحد خالی از غری نه هست این بحث هاست این مقداره که ما یه خبر داریم و راوی داریم ما نسبت خبر رو براوی تصدیم هم به چهار یا سغز و سعیب المذهب یا سغز و سعیب المذهب نیست میشه تصدیم مواسن یا توصیح ثابت نشده اما امامی هست و ممروح حسن یا نیست میشه ضعیم این تقسیمیه که این طوری شده این حال شبر واضح است که قریم نداره ما حال ایشون ادعا بکنه روایات ما قالد به و همه شون قریم راست به این مطلب این اشکال چندگاه میفته ایشان این همین این را راست اما این که حالا تمام کتب عربی و غیر کتب عربی کتب مشهور این طوره نه این طور نیست اون طرفش نادرسته بله اینجا یک ای عبارتی از من صاحب منتقا اول منتقا کرده من توضیح بیشتری عرض کردم ایشون یک مختصری نذر کرد من همیشه عرض کردم انصافاً مقدماتی که ایشون در منتقا دارن به حدیث شیعه نزدیکتر تا کتاب فدری شوند مرحوم ثانی کتاب مرحوم شریستانی خیلی باعث نزدیک نیست خصوصا درباره ای متاسفانه متأسفانه از درباره ای اهل سنت و همون تقسیمات اونا حالا اون تقسیمات اونا اساس داره اصلا هر چند من شاید چون خیلی بحثا اشاره میکنم بعد این شاء توضیحات ار میدم مثلا خود حدیث حسن چیه صحیح چیه خودشون اصلاح دارن اینطور نیست که مثلا حدیث حسن و صحیح رو فرض و رسول الله با برنوبه یا از, اح... یا از صحابه مثلا گفتن بر با... اینا همش برد از قرن دومه عواصب قرن دوم دو و عواصب قرن سوم، این شده اصطلاح ها پیدا اصطلاح واحدی هم نیست مثلا بگیم حسن یعنی این یه خود سنت دارم. ما هیچ لذاح و تازه اون حسنی یعنی هم که علامه قرار غیر حسنی که احل سنت دارم. من ناره اشاره میکنم برای که ذهن آماده بشن تو محل خودش چون خیلی هم توضیح نمیدند این تقسیم ارزشی نداره این تقسیم چهارگانه و دو سر یا بیشتر یا کمتر اینها بی ارزشن عمده مجموعه قرائنی است که ما جمع میکنیم اگر معلول باشه اگر مسترد باشه اگر مجموعه قرائنی را فهم نمیکنه این قرائنی که درس ورده یا خارجت این بین عدد اینا از کلم انصافش اون که از زبان انامه در تفسیر شهید ثانی می اینا, اینا از گرفتن الان چه قسم در زمان ما مسائل فیزیک شیمی فیزیک اینا از اون چیزی در کتاب‌های اروپا یا هر ترجمه فارسی میشه نمیشه شه گفت از اونها گرفتن به تمام معنا خب در حال تخیل کردن این راه هم یک راهی هست که میتونن شیعه رو به خصوص باش بررسی کنن یک اشکال اساسی اینه که این موضوعات به این ساعت نمیشه حالا شاید مراد که اشکال شومدارمیزا باشه اصولا احادیث شیعی یک لغت خاص خودشو داره اصلا این رو از اول ما باید با این آنو صحبت بکنیم یه ترتیب خاص خودش داره یه علم الحدیث خاص خودشو داره یه تاریف خودشو داره این قسام بندی خودشو داره این احسامیشی گفتن؟ درست؟ فرادیشون تو مقدمه یه ۱۲ هم تو دیگه ۲۲ هم مذاره تو دیگه ۲۲ هم شده ما خبه بگه اصولا موضوع بحث علامه و اهل سنت خبر واغل خالی از قرینه هست و روایات اصحاب ما قرینه داره از فرم ادهش هم درسته این اخصاص تو ایجا هم نداره از بعد از علامه ادهه از فوقهای محمس شهیده ثانی اول اینها آمدن گفت این حدیث زیفه لیکن اصحاب هم بکنی خود پیجه قرینه خود اصحاب کریم درسته حدیث زیفه اما اصحاب هم ب پس این مطلب ایشان اجمالاً درست اما تمام کتب اربعه، تمام احادیث قرینه داره این درست نیست. هیچ کافی این درصات. تمام کتب مشروعه مثل خساله شیعه، بولاله شرایط شیعه صد و شرایط شیعه صد اینا قرینه دار این مطلب ایشان درست نیست. این نیست باشه. بعضی نیست انتباه نداره به احادیث بذنش اوغلایی مثلا این حدیث مثلا استراب داره یه دفعه متنش اینجوریه با شمعاریه. بذنش این استراب رو ما توی مقدمات بررسی می‌کنیم. یه تقسیم بندیشو می‌کنیم. مسترب السند، مسترب الاسناد، مسترب المرض، مسترب و ما هر دو استراب dele خب نکته خاصی نداره. ما ایدهی از رو بررسی می‌کنیم. یکیشون استراب راست، یکیشون تا یکیشم یکیشون مثلا ادبیاتش مثلا لغتش خیلی ضعیفه. رسالمات حمار اسابتی غالبا اینجوریه ادبیاتو مغلق می‌ذاره همه ربات عمار انطور چیکار کرده عمار من نمیفهمم کتاب ایشون اینجوریه متأسفانه خب این اصطلاح ما راسته مخصوصا ما چون کتاب گرفتیم مثلا آغاضیس زراره آغاضیس زراره طبیعتش لغت خیلی داره قانونی داره خیلی طبیعتش عالیه لا تنوازی این نوشته طبیعت ربات زراره طبیعت خاصی. وقتی کتاب نداره زراره مختم بال ما در یک مواضیی رو که مناسبات مفصل گاهی ذرا در یک مطلبی سه تا چهار تا شاگرد داره عمر نعزینه از جمیل هست هست هر کدام یک مطلبی رو که از مطلب واحدی هست از ذرا نعزینه از یک بیگاه یعنی از دقت کردن تو عبارت نقطه خاصی توش در میاد مرحوم صاحب‌السالی‌ها چون عکس کردن اینا توی متن کار فصاحت توی متن اینا اصلا کار نکردن چون دنبال مضمون بودن لذا خیال کردم با همین مزمون و مضمون و فتاوی که قدما دادن مطلب حل میشه نه با اونم حل میشه مسئله دلیل 18 ام ایشون اجماع و طائبت محقق الی نقل ابو شیخ و غیره ما اجماع هم که کاش از قول امام این دلیل چون ای تکرار میشه ارزش علمی نداره اجماعی وجود نداره و اجماعی رو که شیخ و علامه محقق ما خیلی ارزش علم برای کشف از قول امام نداره دلیل 19 ام امنا علمان از اجلا استقاد ازا و احادث و به و بسبوتها و سهتها بس و شواهدی بلی این اینا بزرگ بار بودن و بایی فلا فرقه ایشون میگن که لبیر به اند تحقیق فرق فل اعتماد و وجوب عمل بینداله و بین و امناهو سمعه آقا من امام زمانه یعنی از کلینه بگه من این مطلب از امام جواد شیندم با این که این مطلب از یکی هواد نه بودن یکیه فهم نه بودن این صاحب هم که خیلی خلافیشون نه حقا یوان از زمین تازمون فهم کنه ایشون میگه که چون مردمان بزرگواری بودن سلاح داشتن، بره داشتن، چینین داشتن بگه ظهور و حال هم بره هم سلاح هم کسات الاسول هم جو پشت دارن هم پس این که کلینی خودش از امام جواد شنیده باشه یا اینکه یک روایتی رو از در جواد نه انصافاً مطالب اینا آن اخباری یا بعضی شلاق وجدان این مصادمه با وجدان یعنی چی فهم نمی‌کنه تصادماً همین روایت نان رو که سوال اشاره کرده کلینی اصل ابن عباس قریشه جریشه من می‌فهمم داداشش حریش قریشه از این نعم غذبی جعفر جوابی رساله کوچیکی داشت درباره نان زننا چرا من یا همهش کلینی گفت خب حالا ابن که میگه کذاب اون غزا نجاشی هم میگه خب باطله خلا. آقای خویی هم میفرمونه که قطعاً باطله. خب این چیزی با اینطور چطور مثلا نجاشی اینکه خدایی این مطلب از امام جواد شده. واقعاً خیلی مشکل حرفای آله ها حالا بعضی حرفای اصولی‌ها وcontemporary علامه خیلی روشن نیست اما این حرفها هم خیلی باطله. یعنی واقعاً ادعا بکنه که اگر کلینی مثلا عرسود فتحی و واطفیه یا مثلا توسط سنی ها یا مثلا توسط تراسوت که حتی در وثاقتشون کلام قبل بخداری بعد به بعد از, از, از امام صادق معروفونه که درباره عبدلخدیتون عزیز اول در یک کذاب آورده واهمگی فهمونه که ایشون از امام صادق معروف از این کتاب این رو کم عم لطفی در ساواسا بله همون نکته که ما کردیم و این نکته است که مرهوم مجیسی هم در شهر همه حدیث نانزن ها میگه کلینی قرائنی داشته تبیه باونه قرائن نه کرده ایم. این این دوتا با داره, داره مثلا همین حدیث زعیفی که من اشاره کردیم که میگن لاره بفین که کذبست و است و باطلست است دو سه تا طریق داره کلینی از دو سه تا استاد نه این اشاره است از کلینی بخواهد بگه چون مشایخ زیادی حدیث نارت من اعتماد کنم اون چه اشکال داره؟ بگر بکنیم این خیلی مشکل نداره بگه چون دو تا از مشایخ نقل کردن من نقل میکنم این برای اعتماد بر مشایخ این یک مطلبه اینی که مطلبه از ما ها چیزم مطلب دیگریه از کردن مشکل کلی در کتاب وسائل و آن احواری ها فرقی بین حجیت و ثبوت نکشن اگر گفتن این حدیث پیش کلاینی حجته این کلام صادقته خب ثبوت یک چیز حجته است این اینطور نیست که کلاینی کنه بله این بحث اصولی است فکر نمی‌کنم صاحب وسائل فکر نمی‌کنم فکر این بگی اینجا یه بحث اصولی دیگه, دیگه شبیه این اون بحث اصولی اینه که قطعاً صاحب وسائل بدی نظرش اون بحثه یه بحثی هست که ما ولو اساسا مکلف به واقع هستیم خب دقیق کنیم و که بعد از وجود این همه روایات و این معلی موسان فرمیده ما عوض شده مکلفیم به اتباع رواید یه نوع انقلاب تکلیف ما اساسا مکلف به واقعیم خب دقیق ما اساسا مکلف به واقعیم مکلف به احکام الاجی هستیم لختی چون الان راهی نداریم و این معلی سلام و بزرگان ما این رو واسه الان یک نوع انقلاب تکلیف شده به قراره ما دیگه مش مکلف به واقع بشیم مکلف به متون این روایت یه بحث اصولی است یکی از اقسام بحث یعنی یکی از ادله حجیت خبر واحد همینه هم شیخم هم نظر داد یکی از ازلدینه که اصلا تکلیف ما عوض شده ما دیگه مکلف به واقع نیستیم ممکنه عرض میکردم ممکنه این کلام صاحب وسائل نزدیکی این معنا باشه دیگه ما هم کلی مکلف به واقع نیست مکلف این خبر کردن نیست مثلا مثلا اذا فرق نكنه دیگه میگه وامجاد فرداین تو این خبر خبرمون ببین انقلاب شد یک انقلابی پیدا شد تکلیف ما اساسا به واقع بود بعد افتاد به اتباع روایات مثلا انصافا هر کام باعث نه چون ما دنبال واقعیم روایات تربیت صرف کردن از این خبر تریجه است صرفه این احتمال هم این معناشون که خیلی باطله هم. انصافا هم که خیلی المطممل عشرون این در زمان سابق رسم بود حالا الحمدلله برگشته وقتی مثلا میگن 20 میگه ان المطممون عشرونی شماره ای که 20 تکمیل بکنه یعنی شماره که چون در حقیقت 19 تا قبل این 20میه ای متمم ان نقول انها بهل احاد اخبار موجوده به کتب معتمده خلاصش اینه که احادیث صحیحه به اصطلاح این که قبول غیر صحیح هم یا مطابق با اصله مثلا با احتیاط خب شما میگین ما به خبر عمل نمی کنیم چون صحیح نیست اما احتیاط می ما میگیم به خبر من اونم که مخالف اصل با روایاتی که میگه شما باید احتیاط بکنیم با اون درستش بکنیم خب اینا رو سابقا توضیح دادیم باز تکرار نمی‌کنیم. این یک تصوری بوده که اگر یک جایی مفاد حق با, م... با معدده اماره یکی باشه پس فرقی نیست نه بین حق و اماره فرق جوهریست ولی اون معدده شون یکی باشه مفادی بیست 21 هم فرمودن که اصحاب کتب عربعه و امساله هم قد شهد و به سه احادیث کتبه این مطلب گذشت این کلمه امصاله هم اینجا از دلیل داره که چیکار نکته دیگه کمیش برای امصاله هم باشه. فهمیدیم که کتب اربعه شاهدی به سه هفته کتوبه ای که گذشت. و اما امصاله ها هنوز گذشت بعضیا شده مگه امصاله هم به اطلاق شده نام. اما یعنی این مطلب که از کتب کتوبه اربعه و امثال اینها شاهدی به سه کتب کتوبه جمعیت واقعا خیلی عجیب است ولی خیلی واقعی خیلی میشوند. شیخ هیچ چه نگفته اون چیزی که در کتاب تزویج استفصار سینه این لازم رو شیخ کتب اربع غیر کتب اربع شیخ صدوق نگفته اون یکی که در کتاب مثلا حساب یا منلا من هزار یا شیخ طوسی گفته عملی من همه سعیه یا شیخ مفیل گفته عملی نمی‌دونم شو از کجا ای بله. این متون رو تمونه بله اینم مسئله 21 دلیل 23 که فوق العاده ضعیفه دلیل 20 به اصطلاح 22 منطقه به کتب الاستدلال مرادی که هست به استدلال در اینجا نه استدلال به اصطلاح علمیه که فلسفه و منطق و مباحث خارجی باشه مرادش کتو فقه ماست تو تفسیری علنا قطعاً انهم لا يردون حدیثا لذعفی به اصطلاح مول جدی این درسته اجمالا درسته اما این اف نه اجمالان بین که یک خبری چون ضعیف ترجح بکنن نه ممکنه ضعیف باشه عملاً بهش راسته مثلا درس اما اینکه افا همینطور مالی و اول نمیکنه صقد مدارک میزن معلم رو همینطور مال کم شد کرده صاب مداره خیلی عجیب و حدیث که ضعید باشه عمل نمیکنه موثر هم که باشه عمل ها کو موواثر عمله که موواثر عمله از کردم چند پیششه از کردم صاحداری که دو مورت پیدا کرده که ساحدارک دو موثر عمل کرده ماه به فضا کلم حمل نمیکنه که شما اونگی موواثر عمل همکن جهان راست از دست در درفه. مطلبی نیست. اون به طور طبیعی در کتاب مداره به موثق هم عمل نمیکنه. چه برسه به سعید به ضعیف. این کیشون میگه در کتاب استدلال همین و مداره قبل دلیلشون بوده صاحب دیده بیده حمشری اسلام است لبنانیه و ایشون دیده کتابی شده در میکنه ازش. اما اینکه به ماکان حق در مقام این است که این مطلبی که ایشون فرمودن بله در معظم کتب استدلالی ما بعد از علامه مثل شهید اول، شهید ثانی، محقق محمد الیزدی، محقق حسانی بزرگان تا سال جواهر آی خو این انقدر حالا آی خو با یه قیود و قیود و آی حکیم اینی که شوه کتاب دارن انصافا این طوره مجرد این که یه حدیثی و اینا خب مشایخ بزرگی که ما در حالا نجف یا دیدیم مثل آی ها یا به حساب واسطه نسایینی مرحوم آزیا مرحوم آشانسن اصفهانی دیگران اینا راست بشون راسته این طور بود این طور که ضعیف رو مجد زعف رد این هست راست بوده که ضعیف هم عمل کردن روی قرائن و شواهدی که داشتن که مهمترینشون عمل از باشه این مطلبیشان درسته اما از خدم کلیت اونطور که قهیه قهیه هم باشه نداره و درستم هست این یه مقدار اختلاف در شدت و مطلبی بشه ولی در اینجا آوردن. استذ خود دلیل ذکر نه برای اینکه اثبات بکنن این اصطلاح علامه خیلی کارگوشا نیست واسته مطلب اصل مطلب راسته این که خیلی از خبرها این حتی خبرهایی خبرهای ما داریم که در کتب عربی نیستن قرائن برش پیدا میکنن اینم راسته اینم بحث درستی اینم قابل قبوله اما اینکه تمام این کتب عربه و تمام امثالام هم همه اینا ثابتن که این قطعا واصله حجتم هستن اونم واصله عرضه حاطه اسوات این مطلب رو نه نمیشه پیدا کرد. اون ایشون بیا بنداله مختصرش از کنم در این فائده دهم ده ایشون برداشتن بعضی از اعتراضاتی که شده جواب داده جواب ما عسا یه الا ما ذکر نام نه اعتراض. جوابایی که اصولین مثلا گفتن شما گفتین شیخ صدوق گفته همه من حجت است جا گفته لا احنا بالغ خبر میگی اینطور شیخ طوسی مثلا روایت میاره رد میکنه الى آخری ایشون سری کردن اعتراضاتی از این قبیل بیارن و در اصناع این بحثشون هم این قاعده ده از صفحه دیگه سه هفتاد بعد ایک بحثی کردن علا انل علم حاصلان به وجود لعمل بها اخبار الاخبار لما من و برکه بحثی راجع بینید که این مبانی این علم چیه چرا اینه ال پیدا شده؟ من این توضیح رو اینجا اجمالا عرض می کنم یعنی فکر می کنم چون پیدیر نداره زارد بحث نمیشه. اصولا از قرنهای سوم تران بعد از این که بحث حجت خبر مفت بست یواش که بحث های عقیلگرائی هم تو حجت خبر آمد حیر از حالاون مثلا بحث متعارف این بود که آیا خبر واقع. دلیل بر حجیتش تعبادن داریم که اگر عرض چیزی گفت ما محترم قبول بودم. خیلی بحث عادی بودنی بحث بعد برای آیه نبرای دلال هست میکنی خیلی بحث روشنی یعنی بحث مبهمی نبود یواشهاش با آمدن معتذله و بحث های علمی یواشهاش بحث لغت علمی پیدا کرد مثلا علم پیدا میشه علم پیدا نمیشه حقیقت علم چیه ما چند قسم علم داریم میدونم جز صناعات خمس کدوم یکی مفاده خرار جز برهانیات جز زن... خطابیات جزوه شعریات جز جدلیات از شروع کردن یواش شواش این بس هی دامنه پیدا کرد ما در کتاب های لویست کتاب های مرحومه مثلا فزردن شازان که دیویست و شهست وفاتیشونه حتی رساله در نقی حقیقت, علمه، حقیقت علمه، علم ماهیت علم داره یعنی ما از قدیم وارد این بحث شدید این که خیال نفهم این جدیده مثلا خود مرحوم شیف توسی متحده متحیلی در عده که اون روز یک مقداری از کتاب عده رو یعنی بحث خبره اول رفته با علم حقیقت علم یک مرحوم اینجا به مناسا صاحب وسائل رو برداره میخواستم این توضیح بدم. این از قدیم آمده ایشون بله رفتن دنبال همین بحث علم که از ایشون مرادش از علم در جا حجیت علم حاصلان به وجوب لعمل با حاضر بعد از وقت نوحی نعود لیس مناطل عمل ولی علم به نام بل عمل با این اشاره از این مطلبی که ایشون قرموندن از اینجا به بعد اشاره از به دلیل این و همون نکاتی که در میان اهل سنت نسبتا قائل زیاد داره، در میان شیعه کم داره خلاصیه بحث شو دیگه ایشون تا آخر بحث آورده من به نظر یه خلاصی الان مطرح هم شو در خلال بحث ها مثلاً. یه طرح اساسی هست که اصولاً ما در اثر دوری از زمان مبعث اصولاً مأمور به ذهنیم اصلا دنبال علم و حجت و این مقولات نریدی خبر واحد هم زمین آورد اصول عملی هم زنی میره فهم نمی به خبره باقیل عمل میکنی چون زن میگه ما اصولاً معموره به زمین. در مقابل کسایی که میگن زن لای اختی فی حکم الله ما معموره به علمیم یا وصولیم دقیقی از خوجه بخش برو میشه در میان علماء شیعه از بزرگانی که خیلی دنباله این حجره رزن رفتن مهم محقق و میسار قوام همین آنی که میگن انصداری چون باب علم و علمی علم که واضح علمی یعنی حجم ما نه راه علم داریم نه وسوق داریم و احکام نه حجم داریم اصلا وظیفه ما عمل بزنیم این یک موجه خب کسانی که دنبال زندن دیگه چونین مشکل کمتر ممتلوشون خب خبر از زن آور روشن شد در مقابل این کسانی که میگفتن نه شارع مقدس و آیات و روایات و خود علما و خود فقه ها و اونا اهل سنن ماها احمه علیه السلام در طول زمان یکی از اهداف اساسی بود انده زن لایمون یعنی من حق شیعه ما عمل به زن نکنیم ووسوق پیدا بکنیم باید بیان باشه و ما کنم معذقین حتی نباید رسولا اصلا نمیشه بدون بیان باید بیان باشه ووسوح باشه علم باشه یقین باشه ووسوق باشه اسمینان باشه خوب دقته میکده شد حالا که اطمینان را بسوغ میخواد یک ازده که این بیشتر بغدادی‌های های ما بودن بغدادی های تقرامش رو بخواستن ما مجموعه قرار رو اقامه می‌کنیم، بسوغ به حکم پیدا می‌کنیم. بخواستن شد؟ ما بسوغ به حکم پیدا میکنیم. و یکی از رواهای که لیمونهیم برای بسوغ به حکم تلقی اطحاب ماست اگر یه بین اسحان ما جا افتاد قبول شد یکی از راه های وسوق این چی شد؟ و از در مقابل زن وسوق به حق پیدا شد یه از بغدادی ها و غیر بغدادی ها این ها یه دست بالاتر گذاشتن باید ما به جای وسوق به حق تبقیه روات شیعه ما حتی نیستیم وسوق به خود روایت پیدا بکنه. این نیست که فقط وسوق به حق پیدا بکنیم اون دقیق چون احیمه علیه مصلا کاری کردن که این روایاتشون برها یعنی حتی مثلا با این که نقل و معنی جایز بوده جور مثلا زحماتی که شده که ما وصوق به حک پیدا میکنیم این رو ما اسم روشیم حجیت اغلایی خبر پس از اول بیافتون باشه یکی این که اصلا ما دنبال زن باز بینیم وصوق و مصوق رو باید بله دو ما وصول یعنی شریعت مقدسه، این اینطوری است که زن بنا بشه ما راههایی داریم که وصول و اثبات پیدا کنیم که این حکم الهی است حالا غیر از جایی یعنی، نیاز وجوب نماز و پنج تا بودن نماز یومیه غیر از او ما میتونیم وصول به خوب پیدا بکنیم روشن شو اینا از اسمی چیزایی هست که قائل به حجره خبر نیستن تایپ سوم میگن ما حتی وصول به خبر هم پیدا میکنیم با اینکه اینا خبر است با اینکه اینا محتمل و به نسخه چنین بوده احتمال به مضمون هست همه چی توش هست اما اینقدر این ما علیه مستران و بزرگان زحماتی کشیدن که ما وسوق به هوپ هم پیدا می کنیم این کسانی که میگن حجه خبر اغلایی یک ادام آمادن گفتم نه ما بالاتر از این حتی وسوق پیدا نکنیم تعبد به خبر داریم این حجه تعبدی خبر پس روز مطالب و اقوال چهار تا از زن بگیریم تا تعبده بقیرم در حقیقت صاحب وسایل و اخباری ها میخواد اینه بگن ما اضافه بر وصوبه به اولا بعد وسوب و قطعیت به خود این اخبار بگذار می‌کنیم با شواهد با مجموعه قرائم نه به تعبد شریعی علاقه از تعبد شریعی هم قبول دارن شواهد و قرائن میگن نه این خبرها دیگه اصلا ثابته بعضی از عبارت ها مشعل بینی که اصلا وظیفه ما عمل به اینه این یک تقریب دیگری است و انصافا ما از کل توی مجموعه این عقواب احتمالات همون سبیه حجیت و اعلای خبر ما الان شواهدی برای وصول داریم انصافا داریم که به متن خبر وصول پیدا با کنیم به عنوان یک حجت شرعی و جز دیگه توضیحاتی که ان در خلال بحث‌ها آمده و اما این مطالبی که ایشون سر کردن به عنوان نقد بیارن و جواب بدن دیگه با خلال بحثایی که کردیم حالا کردید فکر می‌کنم روشن شود از کردیم کتاب شیخ تحریبه استفسار گزینشی نیست فراگیر کرده این یک این که در کتاب و استفسار ادعی از رباط طرد کرده این قضیه خب ایشون محاله توجیه بکن تغییر که ادعی از روایات ایشون کرده شیخ در این کتاب تنزیبه استفسار ادعی از روایات رو که صد و وکله می کرده شیخ در همین کتاب تنزیبه استفسار گاهی و اوقات بین جمع بین روایاتی یک میکنه شیخ خود شیخ خوده خبر میکنه مثلا یه این روایت از با این این روایت تحمل علا. این اون مال این معنا اون رو نتیجه میگیره این نتیجه میگیره که این خب و در هیچ کتاب فقهیش از تطوان نمی <تصفيق> چی رو جمع کرده میه جمع میکنه اما پتوانه میده ده لذا مطلبی رو که مرحوم صاحب و صاحب اصفار دارن که به عنوان اعت... جواب بدن اعتراضات اعتراضات کاملا وارده و قابل جواب نیست و از کردیم در کتاب صدوح غیر از چند مورد که سراحتا میگه من به این خبر لا افتی سراحتا به این مطلب میگه کلا در ایده از ابواب بانوان عنوان نوادر ورزه ظاهرا به اونها لا و شیخ کلینی هم قدس الله و سره غیر از روزه ابواب نادر باب ونادر یا و نوادر داره ظاهرا به اونها اعتماد نداره پس اینی که ایشون خیال میکنن خود اصحاب کتب اربعه به جمیع روایاتشون اعتعاد داشتن خود این در اینجا درست نیست صورت رو خیر خود تو کافی درست نیست تو فقیه درست نیست و اینکه گزینه هستن تو تحضیل استفصال که قفعی و واضحه بسیار کاملا واضحه کم لطفی صاحب سایر از کشیار که ایشون قائله که این روایات ثابته بله شیخ توسی در میان اصحاب بغدادی ما اولین کسی بود که بحث حجیه و مفرح در تا حدیه هم تمایل به داره اما واضح واضح نیست در کلمات ایشان به کمال هم داری مثلا میادا مثلا آقای زکرا حسین سعید ش که بله هست یه توجیه کرده. س سا و سال یه نهشهق قبول که توجیه کرده اصل قبول. اصلش قبول داشت نه اینکه قبول داشته. خب که این در یک کتاب هست خیلی زنگ که ذاد باشه معناش اینه. پس اینکه انصافا ممسصال که ایشون در این درخواات فظ فر میدم این قابل اعتماد نیست و خلاصه بحث. این قرائن و شواهد که بعض شما ازش تعبیر کردیم به شواهد فرفرستی. و قرائن احوال گذشته دام اگر مراد ایشان این است که این موجه به تعبد شرعی است تعبد شرعی در اینه این ادله ای که اقام کردن کافی نیست اگر مرادشون قرائن اوغدایی و شواهد اوغدایی است تو بعضی اشخاص تو اگر مراد ایشان این است که نه درست ثبوت کردن ایشون که خیلی باطل محض یا نظری که ایشون میتونن بگن که خلاصش همینم هست این این مطلب نوشته که توی کتاب غزا که میخون رابطش رو خلاصش اینه که ما یک تعبد شرعی داریم از ائمه علیهم السلام که اون چه در کتب مشهور از حجت بداره نه ثابت این مطلب امکان داره راست امکان داره. در حد امکان هست دلیلش از کردم دو سه تا روایته بعضیاش احتمال توش هست یعنی صریح صریح نیست از همش واضحه تر یه روایت زمان جواد میگه آقا ادلی از اصحار ما کتابهاشون رو اخیی کردن و از اونها نقل نکل و لم تورد و انهان حالا ما گشتیم از زیر رو در آوردیم حضرت ها حد زباه ها انها کتاب و حقه این و بعد این رواد هست باست این روایت وجود داره و این تعبد امکان داره شده لیکن انشالله اشاره کردیم هم خواهد آمد خودیشون هم گفته نمیتونیم بگیم امام جهال میفرمون شما هر کتابی تو کتاب کنهی مجهول نسخه پیدا کردنی حد سو ها اگر مراد این باشه که خب خیلی فضاحتلی شعن امام جهال شعن بچه طلب هم از بزردتون توی شعن امام جهال لذا گفته شده فعن نها کتاب حقیق کتاب معینی بوده مثلا کتاب حریز بوده که فاول حتی معایدتون نه اممان بوده ده اینا کتب معینی بودن حدا درسی اینا اینا اینا به اجازه نداره نیاز به اجازه شما میگی لا بازار این کتاب کافیه خریدم میگی نغرو بکنی اینا احتیاج به اجازه دقیقاً اینه مراد او روایت اینه این رو امر او غلاوی تعبد شرعی نیست کس تناور این حرف اخباریا فقط در حیث یک کلمه است تعبد شرعی به حجیت روایات کتب مشهوره این امکان داره اما دلیلش کافی نیست و این تعبد هم شرعی نیست دلیلش عرض کردم ان شاء الله می‌خوریم می دو تا نه یکی اما واضح واضحه اینه واضح واضحه این روایت واضح مام جاواده این روایت در سندش هم ضعیفه ان شاء الله کرد هم سندش ضعیفه هم دلالتا روشن نیست مثلا روشن نیست که این حدیث ناظر به این باشه شما از هر کتاب مشهوری از هر کتاب معروفی حدیث نداریم فنال کو تو به حده چیزی رو ما نداریم پس این خلاصه جواب از مطالب ایچان انشاءالله فردا یواشراش یه هم تاریخ خبر را در مفرح میکنی هم یواشراش از کجا اوائل و حجیت شد چطور زند به ماها رسیده انشاءالله الله و صلی اللہ علیه و محمد و آله